مدیر کل لامجز پرورش تهران تی ته یک مصاحبه ای اعلام کردند که به زودی یک درس جدید قراره به دروس دوران دبیرستان اضافه بشه. ای گفتین چه درسی؟ های گفتین؟ ای گفتی؟ وسایل امام؟ نه بابا اون که ما دانشگاهه یا دوره جون وسایل امام خامنه ای؟ نه نه اینم نیست نه. اصلا نمیخواد اقاض بذاریم. من خودم میگم قراره بزودی کلاس های برجام در مدارس تشکیل بشه و در حال حاضر کتاب برجام هم تدوین شده. به جان خودم اگه دروغ بگم. به خدا اگه شوخی کنم اینا گوش کنین ببینید. در قالب یک مجموعه به عنوان کلاس برجام به مناطقمون ابلاغ خواهیم کرد نامه حکیمانهی مقام معظم رهبری هست به ریاست محترم جمهوری دوم متوسطه و توصیه ما پایه دوم از دوره دوم است که در حقیقت میشه کلاس 11 مون. همه مدارس مجاز هستن که به عنوان فوق برنامه در صورت تصویب شورای مدرسه استفاده بکنن بله دیگه پس اگه بچه دبیرستانی تو خونه دارین چشمتون روشن که قراره توی مدرسه براشون دگرنا ریاضی و فیزیک و شیمی و این چیزها مبانی مذاکرات هسته‌ای و اصول نرمش قهرمانانه و چه می‌دونم سانتی ریفیو شناسی این چیزا هم تدریس بشه دیگه این چه میکنه این برجام حالا اینکه این, این چیزا حالا به چه دردی مثلا بچه مدرسه یا میخوره و اینا حالا بعد زمان بگذره تا متوجه بشیم دیگه ما که نفهمیدیم